این داستان سه اصای راهپیمایی و هفت جفت کفش آهنین روزی روزگاری سه خواهر در دامنه کوهی بلند نزدیک دهکده شای هیزم جمع می کردند. اون کوه به کوه جادو معروف بود خواهرها هم جادویی بودن کوه رو باور داشتند چرا که هر وقت برای جمع کردن هیزم می‌رفتن صدای آرومی به کوچکترین اونا میگفت کاترینا بیا بالا اونا ابتدا از شنیدن اون صدا وحشت زده شده بودند با عجل وسایلشون رو جمع کردن و به خونه برگشتند ولی به مرور زمان به اون صدا عادت کردند حتی یک بار کاترینا گفت بیایید به این صدا گوش کنیم و از کوه بریم بالا. خواهر بزرگ تو جوابش گفت چه حرفایی میزنی؟ میخوای ما رو نیست و نابود کنی؟ ولی کاترینا با اصرار میگفت حالا که ما رو صدا میکنه شاید کسی به کمک ما نیاز داشته باشه. خواهرای دیگه با رد حرف خواهر کچیکتر پیشنهاد دادن که اگر دوست داری تنهایی برو دنبال این راه خطرناک. کاترینا با خواهرش خداحافظی کرد. تکه نونی برداشت و به راه افتاد. راه سخت و ناهموار بود ولی اون مصمم و استوار میرفت که یک بار صدایی به گوشش رسید. کاترینا بیا بالا. بالا و بالاتر بیا. کاترینا تمام روز راه بیمایی کرد. دیگه دامنه کوه به سختی دیده میشد. آسمون صاف و آبی و خورشید طلایی رنگ نزدیکتر شده بود و قله کوه آنچنان نزدیک به نظر میومد که اگر دستش رو دراز می‌کرد میتونست که اون رو بغل بگیره اون تو راه رسیدن به قله کوه به باغ زیبایی رسید کاترینا که توی اون بلندی انتظار دیدن چنین باقی رو نداشت به راهش ادامه داد تا به باقبونی پیر و سفید مو رسید. باقبون با تعجب پرسید بچه جون اینجا دنبال چی میگردی؟ مگه نمیدونی که توی اینجا فنا و نابودی در انتظارته؟ کاترینا گفت من صدایی رو شنیدم که مرتب از من میخواست بالا بیام. منم به دنبال اون صدا اومدم. اون صدا خیلی غمگینه. فکر کردم شاید به کمک من احتیاج داشته باشه. باقبون گفت: "و تو هم میل داری که به اون کمک کنی؟" کاترینا گفت: "بله، من دوست دارم بهش کمک کنم." باقبون ادامه داد: "پس دنبال من بیا دختر جون." کاترینا به دنبال باقبون به راه افتاد و از جادهی باریک و شنی به قصری بزرگ و زیبا رسید. اون نمیدونست خوابه یا بیدار چرا که در تمام عمر جایی به این زیبایی ندیده بود. قصری با شکوه، همه جا طلا و کریستال، آینه‌های مجلل و مبلمان زیبا. ولی تمام این شکوه و زیبایی توی اون فضای ترسناک که بر اون خاک مرده پاشیده بودند و جنبنده‌ای توی اون پرنمیزد رنگ باخته بود. واقوبون کاترینا رو به تالار بزرگی پر از مجسمه های مرمری برد و گفت این مجسمه ها رو میبینی اینا تمام کسانی هستند که مثل تو اومدن اینجا کمک کنن و توی امتحان رد شدن. در نتیجه حرف توی دهانشون مرده و چشمشون بینور شده و بدنشونم به سنگ تبدیل شده. کاترینا پرسید مگه چیکار باید میکردند که نکردند و از عهده حل این مشکل بر نیومدن؟ باقبون گفت اونا فریاد مردم رو نمیشنیدند و قدم تو راه کمک به دیگران نمیذاشتند. اون وقت دختر رو به دومین تاال راهنمایی کرد جایی که آدمای زیادی با لباس های نشسته و یا ایستاده بودند ولی نفس نمیکشیدند انگار که همشون توی خواب سنگینی بودند در بین این افراد جوانی خوش قیافه با تاجی بر سرش روی صندلی نشسته بود. واقبون گفت: دختر جان، این جوان تاجدار رو میشناسی؟ کاترینا جواب داد: بله، اون حتما یه شاهزاده است. واقبون گفت: اون شاهزاده ای از سرزمینی دوره. اگر اون رو زنده کنی، همسر اون و ملکه کشورش میشی، وگرنه به سنگ مرمر سرد و بیجونی تبدیل میشی. مایلی امتحان کنی؟ کاترینا گفت بله ولی چی کار باید بکنم؟ باقبون گفت توی اینجا سه تا عصای چوبی و هفت جفت کفش آهنین وجود داره اگر میخوای شاهزاده رو نجات بدی باید این کفشا رو بپوشی عصا رو توی دست بگیری و جهان رو زیر و رو کنی اونقدر درها رو بکوبی تا کفش‌های آهنین سوراخ سوراخ بشه و اصاها تکه پاره. کاترینا با نگاهی به شاهزاده به یاد صدایی افتاد که مرتب از اون طلب کمک میکرد. بنابراین یه جفت از کفشا رو پوشید، اولین اصاها رو توی دستش گرفت و به راه افتاد. راه رفتن با کفش آهنین خیلی سخت بود. ولی با پایداری و استقامت میتونست به هدف برسه کاترینا رفت و رفت روزها و هفته ها سپری شد ماهها و سالها هم گذشت تا به جنگل انبوهی رسید و اولین جفت کفش آهنینش سوراخ شد شب بود و تاریکی مطلق بر تمام جنگل سایه انداخته بود اون راهش رو توی میون جنگل بین درختا گم کرد. بعد از مدتی سرگردانی و وحشت از دوردست نوری به چشمش خورد. قدماش رو تند کرد و به سوی نور رفت تا به کلبه بی رسید. در کلبه زد. صدایی به گوشش رسید و از اون خواست که خودش رو معرفی کنه. کاترینا گفت منم دختر غریب و سرگردان که به دنبال سرپناهی به اینجا اومدم. در کلبه باز شد. پیرمردی سفیدمو، بلندقامت که کاترینا به زانوی اون میرسید جلوشومد. اومد. پیرمرد خوش آمد گفت و گفت دختر عزیزم بیا تو. من الان صد ساله که نه آدمی دیدم و نه صدایی شنیدم. بگو ببینم پی چه کاری به این جنگل دور افتاده و خطرناک اومدی دختر قصه سفر پر ماجرای خودش رو تعریف کرد پیرمرد هم جای مناسبی براش فراهم کرد و صبح زود وقت خداحافظی گردوی به اون داد و گفت دقت کن این گردو یه گردوی معمولی نیست اگر اون رو تکوم بدی بهترین ترانه ها رو میشنوی و هر وقت به اون بگی منو فراموش کن بلا فاصله آسیابی در برابر چشمات ظاهر میشه که حتی از سن کم آرد میسازه. دقت کن که اون رو گم نکنی. چرا که جهیزیه ازدواج تو با شاهزاده البته در زمانی که شاهزاده رو پیدا کنی توی اینه. کاترینا رو گرفت. <بت> از پیرمرگ به خاطر مهمون نوازی و هدیه ارزندش تشکر کرد و با کفشای آهنین و اسا در دست به رفتن ادامه داد. وقتی دومین دو کفشش سراخ شد به کوه بلندی رسید که در دامنه اون کشاورزی در کنار خونش به شخم زدن مشغول بود. کاترینا با دیدن اون مرد دهقان به اون سلام کرد. دهقان سلامش رو جواب داد و گفت خوش اومدی دختر جون. من دویست ساله که نه کسی رو دیدم و نه با کسی حرف زدم. بگو ببینم پای این کوه پی چه کاری اومدی؟ کاترینا داستان مسافرت و سیر و سفر خودش رو با کفش‌های آهنین تعریف کرد. دهقان هم با شنیدن این داستان مهیج به نحو شایسته‌ای از کاترینا پذیرایی کرد و جای نرمی براش فراهم کرد تا استراحت کنه. فردا صبح وقت خداحافظی مرد دهقان سیبی به دختر داد و گفت این سیب رو داشته باش ولی دقت کن که این یه سیب معمولی نیست. هر وقت اون رو تکون بدی زیباترین آهنگار رو میشنوی و هر وقت به اون بگی منو فراموش کن مرده ها رو زنده میبینی. این هدیه رو به عنوان جهیزی خودت اضافه کن. کاترینا با تشکر از مهمون نوازی و هدیه مرد دهقان به راهش ادامه داد. رفت و رفت، روزها و هفته ها، ماها و سالها. اون دیگه نمیدونست که چه مدته که با کفشای آهنین و اصار راه پیمایی میکنه و از این کوی به اون کوی و از این خونه به اون خونه میره. با سوراخ شدن سومین جفت کفش به بیابان خشک و برهوتی رسید که در گوشه از اون مرتازی زندگی میکرد. مرتاز، تن پوشی از پوست حیوانات پوشیده بود و کمرش رو به جای کمربند با برک های بلند درختان بسته بود. اون با دیدن دختر گفت: سلام دختر جون، من 300 ساله که صدای هیچ انسانی رو نشنیدم و قیافه هیچ آدمی رو ندیدم. بگو ببینم چی باعث شده که به این بیابون خشک قدم بذاری؟ کاترینا قصه جهانگردی خودش رو با کفشای آهنین تعریف کرد. مرتاز هم در پذیرایی از اون سنگ تمام گذاشت و جای خواب نرم و گرمی از پوست حیوانات براش مهیا کرد. فردا صبح قبل از رفتنش به اون یک گلابی داد و گفت: "مواظب این گلابی باش. این یک گلابی معمولی نیست. اگر اون رو تکوم بدی، بهترین آهنگار میشنوی. و اگر بگی گلابی منو فراموش کن به تمام آرزوهات میرسی حالا مستقیم برو تا به شهری برسی که همه در انتظار تو دقیقه شماری میکنن کاترینا ضمن تشکر از مهمون نوازی مرتاز راه خودش را همچنان ادامه داد رفت و رفت روزها و هفته ها ماها و سالها تا چهار رومین جفت کفش هم سوراخ شد و به شهر بزرگی رسید اون شهر زمانی خیلی آباد و ثروتمند و پر از خونه های مجلل بود. ولی سیل و خشک سالی اون رو نابود کرده بود و مردمانش دست دست از قهدی و گرسنگی تعم تلخ مرگ رو چشیده بودن. کاترینا به حال اون مردم بدبخت به گریه افتاد. گردو رو برداشت و تکون داد. بعد از پخش موسیقی شاد به گردو گفت گردو منو فراموش کن. لحظه ای بعد در برابر دیدگان کاترینا آسیابی از زمین بیرون اومد و از سنگهای بیابون بهترین آرد رو تحویل داد. بعد از سه روز تمام مردم شهر آذوقه یک سال خودشون رو انبار کردند. پادشاه اون دیار برای قدرشناسی از کاترینا شخصا نزد اون اومد و گفت کاترینای عزیز این گردو رو به من بفروش. در عوض هرچی بخوای بهت میدم. کاترینا گفت این گردو رو نمیفروشم این جزء جهیزیه منه و اگر به کمک احتیاج داشتید از انجام اون دریغ نمی پادشاه تصمیم گرفت هدایای زیادی به کاترینا بده و با کالسکی طلایی اون رو به قصر خودش دعوت کنه. اما دختر با رد هدایا و تشکر از پادشاه گفت من باید با کفشهای آهنین خودم به راهم ادامه بدم. کاترینا رفت و رفت تا پنجمین جفت کفشم سوراخ شد. اون حالا به دومین شهر بزرگ جهان رسیده بود، شهری که زمانی بسیار ثروتمند بود و توی اون بازرگانان و صنعتکاران زیادی زندگی می‌کردند. ولی همه مردم شهر در اثر شیوع یک بیماری واگیر در کمتر از یک هفته نیست و نابود شده بودند. کاترینا از نگون بختی و مصیبت اهالی اون شهر بسیار متاسف شد. سیب خودش رو گرفت و داد. وقتی آهنگ دلنوازی از اون شنید گفت سیب منو فراموش نکن. سیب هم اون رو فراموش نکرد و تمام مردم اون شهر که مرده بودند زنده شدند. گویی همه اونا از خواب عمیق بیدار شده بودند از اون به بعد شهر به وضعیت عادی برگشت و شهری پر از جنب و جوش و پر از امید و شادمانی شد پادشاه بعد از این تغییر و تحول نزد دختر اومد و ضمن تشکر پیشنهاد کرد که اون سیب رو از کاترینا بخره و در عوض نیمی از قلمرو حکومتش رو به اون بده و به علاوه عروس دربارش کنه. کاترینا توی جوابش گفت: ای پادشاه، من این سیب رو فروشم ولی اگر روزی روزگاری به کمک من احتیاج داشتی، در خدمت شما هستم. پادشاه فرمان داد کوهی از هدیه براش بیارند، ولی اون تمام هدایا رو رد کرد و گفت: من باید با کفش‌های آهنی خودم به ادامه بدم. با سوراخ شدن ششمین جفت کفش اون به سومین شهر رسید شهری که روزگاری پر از آدمهای خوشبخت بود ولی حالا همه لباس هذا پوشیده بودند و توی سوک نشسته بودند چرا که شاهزاده اون شهر از هفت سال پیش ناپدید شده بود و طی این مدت تمام دنیا رو دنبال اون گشته بودند ولی کمترین ردپایی از اون پیدا نکرده بودند کاترینا با اطلاع از این مطلب به حضور پادشاه رفت و گفت ای پادشاه عزیز شاید کمکی از دستم بر بیاد. من نمیدونم پسرتون کجاست ولی میتونم اون رو به شما نشون بدم. پادشاه گفت خواهش می کنم این کار رو بکن. مطمئن باش که نیمی از ثروت خودم رو به تو می بخشم. کاترینا اون گلابی رو که مرتاز به وقت خداحافظی به اون داده بود برداشت و تکون داد. به محض اون که موسیقی دلنشینی از اون شنیده شد گفت گلابی منو فراموش نکن و شاهزاده گم شده را نشون بده. گلابی هم همین کار را کرد. ناگهان در برابر چشم درباریان قصر با شکوهی پدیدار شد. یکی از تالارهای اون قصر پر از مجسمه های مرمر بود و در تالار دیگه درباریان نشسته بودن. در میان درباریان هم جوان با شخصیتی تاج بر سر بر صندلی طلایی تکیه زده بود پادشاه با تعجب فریاد زد بله خودشه اون پسر منه ولی تعجب کاترینا از اون کمتر نبود چرا که این همون قصری بود که اون از اونجا با هفت جفت کفش آهنین به راه افتاده بود و شاهزاده مجسم شده هم همون شاهزاده ای بود که کاترینا قص نجات اون رو توی سرش میپرورون پادشاه از کاترینا تقاضا کرد که اون گلابی رو به اون بفروشه و در مقابل تمام هست و نیست خودش رو تقدیمش کنه ولی کاترینا گفت گلابی رو نمیفروشم ای پادشاه عزیز این جزء جهیزیه منه ولی میتونم چیز با ارزشتری رو پیشکشتون کنم بله من میتونم پسر شما رو برگردونم حالا اگر میخواین اون رو دوباره ببینید لطفاً با من بیاید. فوراً کالسکی شش اسب در محووته قصر حاضر شد. پادشاه بی صبری گفت زود باش سوار رو تا حرکت کنیم. کاترینا گفت شما که هفت سال سب کردید هفت روز دیگه هم صبر کنید. دقت کنید که پیش از من وارد قصر نشید وگرنه مجبور میشید که مثل من جهان رو با هفت جفت کفش آهنین برید. اگر این کار رو نکنید به مجسمی مرمرین تبدیل میشید. بنابراین بهتر یک هفته دیگه دندون روی جیگر بذارید. اون وقت کاترینا با آخرین جفت کفش آهنین در پا و اصای سوم در دست به راه افتاد. رفت و رفت تا به کوهی رسید که زمانی همراه خواهرش به اون کوه میرفت و هیزم جمع می کرد. سکوت مرگباری سراسر کوه رو گرفته بود. ولی با رسیدن کاترینا همه چیز دوباره زنده شد. درختها به حرکت در و پرندهها شروع به خوندن کردند. صدای حرکت شاخه درختان و نقم سرایی پرندگان در ارتفاعات بالاتر بیشتر و بیشتر میشد. باغبان که در باغ بالای کوه در انتظار نشسته بود، از دور صدا زد. خوش اومدی کاترینا. آیا همه هفت جفت کفش آهنین رو سوراخ کردی؟ کاترینا با نشون دادن هفتمین جفت کفش که توی پاش بود گفت بله بله باقبون بازم گفت آیا سه اسای راهپیمایی رو هم تک تک کردی؟ کاترینا به باقی مانده اصای سوم که توی دستش بود اشاره کرد و گفت بله بله باقبون پیر گفت پس بیا و اصایی خودت رو بر مجسمه تالار بکش. کاترینا از ای مجسمه به مجسمه دیگه رفت و باقی مانده رو که توی دستش بود به یکایک که اونا کشید. ناگهان همه مجسمه ها زنده شدند و قصر ساکت و خاموش پر از قیل و قال شد. باقی کاترینا رو به تالار دوم برد و گفت حالا بیا و شاهزاده و درباریانش رو زنده کن. کاترینا نزدیک شاهزاده رفت و اسای جادویش رو بر مجسمه اون کشید. شاهزاده تکونی خورد و از خواب بیدار شد. اون وقت از دختر پرسید تو کی هستی ای دختر زیبا؟ باقبون پیر دست کاترینا رو توی دسته شاهزاده گذاشت و گفت این دختر زیبا همسر و فریادرس توه. شاهزاده که توی عمرش دختری به این زیبایی ندیده بود از این اتفاق هیجان زده شد. بقیه داستان رو حتما خودتون میدونید. شادی به شهر برگشت و شاهزاده و کاترینا با هم ازدواج کردند. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلاش مهران دوستی تی نشانی وبلاگ ما ام t نقطblFA نقط COم، مهران دوستی. blog.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی.